ای حساب‌های قدیمی در وطن کارهای مهمی در انتظار چنگیز بود از آنجا که حاکم ایالات مغولان در چین درگذشته بود خاندان چین بر قلمرویی که چنگیز سالها پیش از دست آنها بیرون آورده بود دوباره مسلط شده بودند بنابر این مغولان می‌بایست دوباره چین را تصرف می‌کردند چنگیز همچنین از شاه قوم تنگود که با امتناه از فراهم آوردن سرباز برای لشکرکشی به غرب آسیا به او توهین کرده بود، می بایست انتقام میگرفت. در سال 1226 میلادی چنگیز که در آن هنگام تقریباً 59 سال داشت، توجه خود را به تنگود معطوف کرد. مغالان برای گرفتن انتقام شیوه های ابتکاری را تحریزی میکردند، برای مثال رودخانه ها را مسدود کردند و سپس صد را گشودند و تمامی شهرهای تنگوت ها را زیر سیل گرفتند. تدابیر جنگی مغالان نیز خصوصیت ابتکاری داشت. طی نبردی بر روی رود یخ بسته یانگ تسه مغالان بر روی یخ سمت خود شن ریختند و به سم اسبان خود نمد بستند و به این ترتیب تنگود ها را که میلغزیدند و سر میخوردند شکست دادند. چنگیز در ابتدای جنگ با تنگوت ها از اسب به زیر افتاد و دچار جراحت های وخی می شد. هرچند پزشکان به او توصیه کردند که تا بهبودی کامل از میدان جنگ دور بماند، او به ماندن با سپاه خود تا زمان پیروزی بر تنگوت ها اصرار کرد. در زمانی که چنگیز در حال بهبود یافتن از جراحات ناشی از فرو افتادن از اسب بود، پسرش جوچی درگذشت. شایاتی پخ شد مبنی بر اینکه او را مخفیانه زهر داده بودند جوچی با پدر و برادرانش بر سر جریان جنگ در آسیای غربی مجادله کرده بود و به شدت با خونریزی ها و ویرانگری هایی که آنها دران سرزمین ها مرتکب شده بودند مخالفت کرده بود احتمال دارد که چنگیز در مرگ او نقش داشته است جوچی خائن محسوب می شد و احتمالا چنگیز می است که اختلاف میان پسرانش وحدت امپراتوری را سست کند با این حال طبق یک گزارش با رسیدن خبر مرگ جوچی چنگیز به خیمه خود رفت و تا سه روز محزون بود پیش از پایان عملیات جنگی بر ضد تنگوت ها چنگیز که هنوز دوران نگاحت را می‌گذراند به مرضی که شاید محرق یا مالاریا بوده است مبتلا شد وی با بقیه پسرانش به بحث در این مورد پرداخت که جنگ با تنگوتها را چگونه تمام کنند پسران او همچنین عهد کردند که پس از آن از سلسلی چین انتقام بگیرند هنگامی که مرگ چنگیز نزدیک شد وی با فریاد گفت اروق یا اولاد و اعقاب ما غباهای زردوخته بپوشند و های چرب و شیرین بخورند و به اسبان نیک و صورت برنشینند و خاتونان خوش روی در برکشند نگویند که اینها پدران و آقایان ما جمع کردند و ما را در آن روز بزرگی فراموش کنند مرگ جهانگوشا چنگیز خان وحدت بخشنده غبایل و امپراتور مغالان در ماه اوت سال 1227 هنگامی که بیش از شهست سال داشت درگذشت گذشت. چنگیز ترجیح داده بود که در زیر کوه برخانقلدون قلدون نزدیک رود اونون دفن شود. گفته می شد نیاکانه توتمی مقالان یعنی گرگ آبی رنگ و گوزن بی در این محل وصلت کرده اند. در مسیر تشیع هر موجود زندهی که با تشییع کنندگان رو رو گردید کشته شد. آنان باید در جهان بعدی به چنگیز خدمت می کردند. در افثانه ادعا شده است که در آرامگاه آخر چنگیز چهل دختر برده ی آراسته به جواهرات و چهل اسب زیبا را غربانی کردند و در کنار او به خاک سپردند. سپس هزاران سوار بر روی محل تدفین تاختند تا آن را پنهان سازند. تا امروز محل دفن چنگیز خان یافت نشده است. در زمان مرگ چنگیز خان، وسط غلم روی که او تسخیر کرده بود، چهار برابر وسط امپراتوری اسکندر کبیر و دو برابر وسط امپراتوری روم بود. با وجود این، چنگیز هرگز تمایل نداشت که سرزمین ها را به عنوان بخشی از روند تسخیر آنها زمیمه غلم روی خود کند. مغلان بر دشمنان غلبه می کردند. تمام اموال آنها را تصاحب می کردند و با باقی گذاشتن تنها چند پیرو برای جمعاوری مالیات می رفتند. چنگیز سلسله ای را تحسیز کرده بود و امیدوار بود که پسرانش و فرزندان آنها پس از مرگ او به حیات سلسله ادامه دهند. اما آنها برای انجام این کار نیاز به حکومتی داشتند که قادر به حفظ سرزمین های پهناور ملت مغول باشد. ایجاد حکومت سرانجام اشراف مغل را از کوچ به زندگی اسکان یافتی شاهانه سوق داد. اوگتای خان می شود. چنان که چنگیز خواسته بود، پسرش اکتای در قوریلتای برگزار شده در سال 1229 میلادی به عنوان امپراتور جانشین او شد. 4 وارث چنگیز جوچی که در این هنگام درگذشته بود ولی پسرانش نمایندگان او بودند جقطای، اکتای و تلوی به خاندان طلایی و اشراف حکومتگر شهرت یافتند و تنها آنها و فرزندانشان حق جانشینی به عنوان خان داشتند چنگیز هنگامی که اکتای را به عنوان وارث حکومت برگزید، های بزرگ یعنی قلمروهایی را که بر آنها حکومت می‌شد نیز برای هر یک از پسرانش تعیین کرد هر اولس از سرزمینی تشکیل می‌شد که کوچنشینانی در آن به سر می بردند و شامل یک سپاه، حیوانات و مجموعه‌ای از صنعتگران بود دارنده ی هر اولس همچنین حق دریافت سهمی از درآمد مالیاتی سراسر امپراتوری را داشت چنگیز همچنین اولسهای را به محترمترین ترین فرماندهان و حامیان خود اختصاص داد هر بزرگترین اولسها به پسران او رسید طبق سنت مغولان دورترین زمین ها از خانه به پسر ارشد داده میشد نظر به اینکه جوچی پسر ارشد چنگیز قبلا درگذشته بود ارده و باتو دو پسر جوچی سرزمین را در سمت غرب در دورترین نقطهی که سمه یک اسب مغل بران قرار گرفته بود دریافت کردند و این رهبران و دودمان های آنها بر غلم روهایی نزدیک روسیه حکومت کردند که به ترتیب به عنوان اردوی زرین، آلتون اردو و اردوی سفید، آغردو، چغان اردو شناخته شدند. جغتای سرزمینی را در آسیای میانه دریافت کرد که زمانی به قوم غراختایی تعلق داشت و به اکتای سرزمینی در شمال شرق سرزمین جغتایی داده شد. طلوی سرزمین مرکزی مغالان در نزدیکی رود اونون را دریافت کرد که میراس سنتی کوچکترین پسر بود. خرد یلیو چوتسای نخستین اقدامی که اوکتای به عنوان امپراتور صورت داد انجام خاست پدرش در غلبه دوباره بر سلسلی چین بود اوکتای این کار را با کمک امپراتوری سونگ در چین جنوبی انجام داد اوکتای همچنین ایجاد حکومتی موثرتر برای اداری سرزمین های مغل را آغاز کرد او بنابراه نمای یلی و چودسای منجم خطایی که خاندانش در دربار سلسله چین خدمت کرده بودند به انجام این کار پرداخت. ابتدا که یلیو چوتسای را به اسارت بردند، چنگیز او را به دربار خود برد تا در به کار گرفتن سایر زندانیان با استعداد خطایی کمک کند. چنگیز یلیو چوتسای را تحسین می کرد و در امور مهم با او مشورت می‌نمود. با مرگ چنگیز خان اوگتای این منجم را به ارس برد این یلیو چو سای بود که پس از پیروزی مغولان اوگتای را از قتل عام افراد تحت امر سلسله چین در چین شمالی بر داشت با آنکه سبوتای و دیگران خواستار آن بودند که سرزمین چین شمالی را از ساکنان قبلی آن پاک کنند تا رمداران مغول از آنجا استفاده کنند یلیو چودسای استدلال کرد که در آمدهای مالیاتی و آیدات محصول بیش از چراگاه برای امپراتوری سودمند است. ایجاد حکومت در دوران چنگیز یلیو چودسای خدمات مهم انجام داد. از جمله اینکه که کتابها و کتابخانه ها را از نابودی به دست مغلان در امان نگه می داشت. او در دوران حکومت اکتای به علت توصیه مفیدش در مورد امور مالیاتی اجازه یافت تا خدمات اداری را بهبود بخشد. برای مؤثر ساختن رهبری مغلان در غلم روحای تسخیر شده، گروهی از مردان موسوم به داروغچی انتخاب شدند تا به عنوان حاکمان نظامی ایالات عمل کنند. مغلان فکر ایجاد منصب داروغچی را از خطایی ها به وام گرفتند. خطایی از این منصب برای اداره سرزمین های تسخیر شده استفاده کرده بودند. داروغچی ها از صفوف کشیک یعنی مورد اعتمادترین محافظان خانه بزرگ انتخاب می شدند. آنها با خان در ارتباط مستقیم بودند و برای به سرانجام رسیدن فرمان ها به آنها متکی بود. نقش اصلی داروغچی ها این بود که اجازه شورش به ملل مغلوب ندهند آنها همچنین مسئول جمعآوری مالیات ها از جوامع تابع و فرستادن آن به مغولستان بودند پایتختی دائمی بکتای برای کمک به تسریع تحویل خراج ها و سامان بخشخشی به حکومت نوپا تصمیم گرفت یک مرکز رسمی فعالیت برپاسازد و پایتختی دائمی برای امپراتوری ایجاد کند اردوگاه سنتی کوچنشینی مرکب از یورت و خیمه ها پاسخگوی نیازهای ایجاد شده به وسیله امپراتوری جدید نبود. سران ممالک تابعه دائمان به مرکز مغولان می آمدند یا خراج می پرداختند و سفیران به همه مرز های امپراتوری رفت و آمد می کردند. اگرچه چنگیز خواهان آن بود که امپراتوری بر اساس شیوه زندگی کوچنشینی باقی بماند، اوبتای نسبت به افکار جدید و رسوم خارجی بی تأثبتر بود. او پای دائمی در غراغوروم بنا کرد. مکانی که قبلا بخشی از غلم روه نایمان ها بود و جز به غلم رو اولیه مغالان نبود و تقریبا در نیمه راه بین اولوس های اوبتای و طلوعی قرار داشت. این نقطه چهار راهی بود که کاروان های بازرگانان و کوچنشینان و مهاجر غرن ها از آن عبور کرده بودند. اوتای این محل را به عنوان مرکز سیاسی و تجاری امپراتوری در نظر گرفته بود. قراقروم به صورت شهری حساردار با محوطه‌ای برای اوتای و دربار او، محله‌هایی برای بازرگانان و صنعتگران چینی دربار و محوطه‌ای برای خزانه حکومت و اداره جمع‌آوری مالیات ساخته شد. از آنجا که مغلان ترجیح می‌دادند در هوای آزاد بخوابند خیمه های خود را در ترحیم مدور در هوای آزاد در داخل محووتی کاخ برپا کردند. هرچند اکتای به کوچ فصلی ادامه میداد اما شهر غراغ مکان مناسبی را برای جای دادن مقر اداری امپراتوری و دربار فراهم آورد. وقتی که در حال اقدام برای ایجاد حکومتی موثرتر بود، مقابله با مشکلات ایجاد شده به واسطه فقدان تشکیلات در قلمروها را نیز پی گرفت. درست همانطور که سلسله چین در طول عملیات نظامی مغولان در آسیای غربی موفق به کسب دوباره قدرت شده بود، در زمانی که مغولان مشغول نبرد دوباره با سلسله چین بودند، جلال توانست نیروی مقاومت قدرتمندی را در قلمروهای سابق سلطان تشکیل دهد در سال 1230 میلادی اوتای سپاهی را به فرماندهی جرماقون سردار مغل برای سرکوب سلطنت دوباره برقرار شده خاره از بسیل کرد و جلال الدین بار دیگر از وطن خود بیرون رانده شد او از دستگیری گریخت ولی هرگز نتوانست بار دیگر پشتی بانانی گرد آورد در این سرزمین های دوباره تسخیر شده به عنوان داروغچی یا حاکم نظامی باقی ماند و طی دورانی ده ساله بسیاری از کشورهای کوچک غفغاز در مجاورت غلم خود را تسخیر کرد و در سال 1236 میلادی راه خود را به طرف پادشاهی گرجستان گشود داروغچی دیگری برای تحکیم سلطه بر آسیای غربی اعظام شد مغولان با تحکیم اقتدار خود بر این ناحیه زمینه را برای توسعه بیشتر به سمت غرب فراهم آوردند. قریلتای سال 1235 میلادی. اوگتای پس از تهاجم پیروزمندان به سلسله چین در سال 1234 میلادی به مغولستان بازگشت تا در جریان ساخت قراقروم قرار بگیرد. او در سال 1235 میلادی خاندان طلایی و مشاوران خود را به غریل تای تا وضعیت امپراتوری را ارزیابی کنند و نقشه هایی برای آینده بکشند. یلی و چود توانست اوکتتایی را متقاعد کند که اگرچه امپراتوری بر پشت اسب تصگیر شده است ولی نمی بر پشت اسب بر آن حکومت کرد مغان به راهنمایی یلیو چودسای شروع کردند به تحول از زندگی کوچنشنی به زندگی اسکان یافته یلیو و چودسای از غریلتهایی برای پیشبرد نظرات خود استفاده کرد اصلاح نظام مالیاتی اداره دربار سلطنتی مغول تأسیص کتابخانه ها و ایجاد مداری که کودکان مغول بتند در آنها تعحلیم ببینند و در آینده به کارگزاران غیر نظامی تبدیل شوند اکتای به سخنان این مشاور توجه کرد و این تغییرات نوین را به عمل آورد اکتای همچنین شبکه ارتباطات امپراتوری موسوم به یام را بهبود بخشید او فرمان داد تا غرارگاه در سراسر امپراتوری و میان همه اولس ها به میان اقامتگاه های خود وی جغتای و باتو ساخته شود همچنین چاه در فواصل منظم حفر گردید تا برای پیک ها آب فراهم شود و در تمام قرارگاه ها که به میزان یک روز سواری از یک فاصله داشتند برای سواران غله، اسب و غذا فراهم گردید به پیک های رسمی همچنین یک پایزا داده می که نوعی نشان هویت بود که عبور ایمن آنها و مساعدت به آنان را تضمین می کرد. ان گومباس درباره آینده امپراتوری در قلیل تای سال 1235 میلادی خاندان طلایی هایی را دریافت کردند مبنی بر اینکه سردار جرماگون در حال پیشروی برای تسخیر پادشاهی گرجستان است موفقیت این عملیات نظامی در تعیین جهت توسعه امپراتوری توسط خاندان طلایی تاثیر گذاشت با تو، پسر جوچی که غربی ترین اولوس را رهبری می گزارش داد که در سرزمین های غربی از جمله آنهایی که سبوتای طی تعقیب خارعزم شاه از میانشون عبور کرده است، فرصت های بزرگی وجود دارد. از آن رو که ترین قلم روها همچنین زیفترین حلقه اتصال در زنجیره مقالان بودند، سبوتای پیشنهاد کرد. که سربازانی برای تقوییت آن نواحی بفرستند و سپس شروع کنند به لشکرکشی به نواهی دورتر غرب به سمت اروپا و به ملتها یک به یک حمله کنند خاندان طلایی از این فکر هیجان زده شدند و اکتای گفت که او خود عملیات نظامی در غرب را فرماندهی می کند اما یه دیو چودسای به خاطر او آورد که زمان با دوران چنگیز تفاوت کرده است او اصرار کرد که جایگاه اوکتایی به عنوان خاند و اداره کننده امپراتوری در غراغوروم است نظر به اینکه که چنگیز غربی ترین سرزمین ها را به باتو داده بود خاندان طلایی مقرر کردند که باتو لشکرکشی با اوروب ها را فرماندهی کند اقدام جسورانی که سبوتایی به اشتباه معتقد بود که انجام آن ممکن است هجده سال به طول انجامد